بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین التاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و السلام و لك السلام و الیك يعود السلام سبحان ربك رب العزت عما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ایوها النبی و رحمت الله و السلام على الأئمة الحادين المهديين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 السلام و علی علی ابن الحسین زین العابدین السلام و محمد ابن علی باقر علم النبیین السلام و جعفر ابن محمد الصادق السلام و موسى موسی ابن جعفر الکاظم السلام و علی ابن موسی السلام و محمد ابن علی الجباد السلام و علی علی ابن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علي الذكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حللت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار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 قد امیتات، ول قد اهیات. فاen تسمع او قولی و تطيع او امری اهدكم إلى سبيل رشاد. این پرازی از نامه ابی عبدالله الغسین عليه السلام است، وقتی که از مدینه وارد مکه شدند، خطاب به سران بسره نوشتن و در منابع تاریخی ما ذکر شده اما از منابع نقل شده از شیعه و سنی. امام علیه السلام در این فراز که در ضمن یک نامه نسبتا طولانی تریست فرمودن انا اد او کتاب الله من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا یعنی فهم کتاب خدا عمل به کتاب خدا و سنت نبیه شما را دعوت میکنم پیرو سنت نبی الهی باشید فا السنه قد امیتد سنت پیغمبر مرده ولی بدعت قد احیید بدعت زنده شده فا انتسم او قولی اگر سخن مرا بشنوید و تتیع او امری و متی امر من شوید اهدکم الى سبیل الرشاد، شما رو به اون راهی که بناس رشد شما، تعالی شما و سعادت شما در اون راه باشد هدایت میکنم سال 93 پارسال نپری سال در همین مکان بحث ما در دهه محرم عنوانش این بود که اما نقش آشورا در دفع موانع نقش آشورا در تحقق هدف بیا. امسال میخوام همون بحث رو ولی با نگاهی دیگر با توجه به شرائط زمانی و مکانی تحت این عنوان امام حسین علیه السلام و تبیین موانع تحقق هدف بیا. اگر هدف انبیا تحقق نیافته و اگر آشورا روشنگری کرد ولی بعد از آشورای حسینی سال شست یک هجری قمری تا کنون هنوز هم ما اون توقعی که از تحقق هدف انبیا در جوامع بشری داریم ندیدیم. علت چیست؟ امام حسین علیه السلام چه روشنگری فرمودن مشکل کجاست و آیا در واقعی آشورا و دهه این محرم که بحث شناخت بهتر با حرکت ابی عبدالله الحسین قرار است ایجاد شود یک همچون موضوع مهم اساسی که هدف انبیا اگر بناس تحقق بیابد، چه موانعی نمیگذارد و این موانع از دید امام حسین علیه السلام مخصوصا و واقعی که به نام آشورا و کربلا اتفاق افتاد چیست؟ خب قطعا برای روشن شدن مطلب، اولین سوالی که به ذهن خطور میکند این است، هدف انبیا چه بوده است که بنابود تحقق بیابد؟ دوم، آشورا چه نقشی برای این تحقق داشته؟ سوم، اگر تحقق نیافته، دو تا نظر در مرحله اول اینجا مطرحه دوستانی که با تفکر متفکرین مختلف در این زمینه چه در داخل ایران، چه خارج ایران آشنایی دارند و مطالعات این گونه ای داشتهن می میدانند که دو نظریه در اینجا مطرح شده و خیلی هم دامن زده می شود یک نظریه ای که میگوید هدف انبیا پیاده شدنی نیست بی خودی خودتون رو معطل نکنید اگر بنا بود پیاده شود در طول این چارده غرن پیاده میشد. آیا واقعا همین گونه است؟ یعنی این همه انبیا آمدند تا نوبت به پیغمبر اسلام رسید این همه ارسال رسول انزال کتب تا نوبت به قرآن کریم رسید و قرآن کریم هم به عنوان آخرین کتاب الهی تصریح دارد نه یک جا، نه دو جا، نه مستقیم، حتی غیر مستقیم و هم مستقیم که الذی ارسل رسوله بالخدا و دین الحق لیوزهرهو علی دین کله ولو کرهل مشرکون غرار است تصریح قرآن کریمه این دین عالمگیر شود این دین تحقق بیابد ولو مشرکین نخواهند ولو مخالفین مخالفت کنند به تعبیر دیگر ولو آنانی که موانع بسیاری را سر راه انبیا تراشیدند و مانع تحقق اهداف انبیا شدند اما خداوند الا رقم تمام اون تلاش ها در قرآن کریم وعده داده که باید تحقق بیابد و تحقق یابد. پس یک نظر این است آقا هدف انبیاء تحقق یافتنی نیست دسته دوم میگن نه همین اشاره مختصری که فعلا به یک آیه کردم و بیان کلی عرض داشتم هدف انبیا تحقق یافته نیست ولی بر مبنای سنت الهی و نظام پروردگار یک زوابطی دارد، یک قوانینی دارد، اگر آن زوابط و قوانین رعایت شود تحقق میابد و اگر رعایت نشود، چهارده قرن که گذشته غرنهای متمادی دیگرم بگذرد تحقق یابد زیرا قانون حاکم بر عالم از طرف پروردگار که سنت نام گرفته به تعبیر قرآن کریم این سنت لنتجه لن شما سنت الهی را سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیل سنت الله ولن تجده لسنت الله تحویل لن به برده مطلقا هرگز ابدا سنت الهی را نمی یابید که تغییر کند و دگرگون شود و حالی به حالی گردد پس اگر این دو نظر در خصوص هدف انبیا مطرح شده، یک، هدف انبیا پیاده شدنی نیست، تحقق یافتنی نیست، پس از اون سرف نظر کنیم، سراغ مکاتب دیگر بریم، از پیشوایان اندیشه های بشری مدد بجویم، ما اون چرا که انبیا به نام راه خدا برای سعادت ما مطرح کردند؟ ناامید بشیم نظر دوم خیر نه خدا دروغ میگوید، نه انبیا بیهوده گفتن نه کتاب خدا بیهوده سخن گفته اما تحققش را مشروط به شرایطی دانسته و نظامی را برای اون لازم می آن را بهتر آشنا بشیم برای این منظور اگر ما قرار جزء دسته دوم باشیم که بگوییم هدف انبیا تحقق یافتنی هست زیرا خدای عالم بیهوده سخن نگفته و بیهوده این همه ارسال رسول و انزال کتب نداشته خب برای این منظور چه کنیم اینجا دو نگرشی را که به شکلی مطرح کردم برای ورود به بحث و مقدمه اشاره دیگری کنم به این شکل. یک، آیا کسانی که در این عالم میگوین اصلا وحی را قبول نداریم و حق نمیپنداریم؟ دین، خدا، نبوت، انبیا، معنویت، متافیزیک، ماورا و طبیعه همه را بریزید دور، اینا اساطیر است اینا بافته ذهن افراد است اینا همه ایدئالیستی برخورد کردن است بیایید رئالیست باشیم واقعیت را بپذیریم لذا سخن از دین و وحی و انبیا را کنار بگذارید اصلا نوبت به قبول وحی نمی رسد تا اینکه بپرسیم هدف انبیا چیست و نحوه تحققش چگونه است خب این یه بحث بسیار مفصلی است ما مگر کسی این گونه سخن بگوید یا کتاب بنویسد که مینویسند مقاله داشته باشند و سایت هایی در این زمینه دایر کنند که کرده آن برخورد منطقی بر مبنای روش قرآن وحی و عقل داریم بحث های کلامی مفصل، بحث فلسفی مفصل، بحث های مفصل به عنوان بروندینی و بحث های قرآنی و روایی مفصل به عنوان دروندینی که چرا بشر به وحی نیاز دارد؟ این بخش اول رو میگذاریم کنار اما بحث ما از اینجا به بعده کسانی که در دهه محرم می از امام حسین درس بیاموزیم یعنی جزء دسته اول نیستیم که میگویند وحی و دین نه میگن وحی بله دین بله خدا را قبول داریم ولی نحوه مندی ما از وحی به عبارت دیگر رسالت وحی یا به تعبیر دیگر کارایی وحی برای ما انسنها در این عالم چه میتواند باشد اینجا سه دسته شدند پس اون دو دسته اول وحی نه وحی آری اونایی که جزء دسته دومن وحی آری دین بله اینا با سه دسته شدند دسته اول دین را قبول داریم وحی را قبول داریم ولی کارائی وحی فقط و فقط برای رابطه شخصی و فردی انسان با خداست بیشتر از این وحی قدرت ندارد و رسالت هم ندارد اگر توقع شما از وحی کارآمدی بیش از این حد است شما بیخودی خودتون و معطل کردید لغتی که برای این معنا به کار برده ان و واژه‌ای را که در این رابطه خیلی دامن زده شده و مفصل روش منور دادن چیست کمال دین کمال حد عقلی است نه کمال حد اکثری یعنی چی یعنی من وحی را قبول دارم قرآن را پذیرفتم قرآن کریم فرموده است الیوم اکملت لکم دینکم من دین را برای شما کامل کردم و علیکم نعمتی من نعمتم را بر شما تمام نمودم ورضیت لکم الاسلام دینا راضی شدم این اسلام که نقص ندارد کم ندارد کامل شده است دین شما باشد میگن خب ما اینو قبول داریم آیه میگه اسلام دین کامله ولی کمالش حد اقلی است حد اقلی یعنی چی یعنی اون کمترین حدی که شما نیاز دارید نسبت به اون کمترین حد کامل است اما نیاز شما بیشتر از اینه لذا انتظار اون حد بیشتر را از دین نداشته باشید من کلیشو رو میکنم ولی بعد با توجه به منابه با ذکر مدارک این مطالب رو خدمتون ارز خواهم کرد ببینید یه مثال ارز کنم یه کمی روشنتر بشه مثلا فرض کنید بنده به عزیزانی که این دوربین رو اینجا کار گذاشتند فیلمبرداری میکنن یا یه سری کارهای در رابطی با این زمینه رو دارن تنظیم میکنن میگم از شما توقع دارم تمام مشکلات برق تهران را حل کنید همه مشکلات برق ایران را حل کنید همه مشکلات در رابطه با برق کره زمین را حل کنید میگه آقا من نسبت به این محدود ای که الان مسئولیتش رو قبول کردم هیچ نقصی ندارم دقیق دارم کارمو انجام میدم دستنام دقیقه تخصصم دقیقه دارم خوبم کارمو انجام میدم این در حد عالی و ایدئال رسیده ولی فقط تو این محدوده محدوده دیگر نه شما بقیه محدوده رو چرا از من میخواید؟ دسته اول اینگونه فکر میکنن میگن وحی فقط در رابطه با مسائل شخصی شما آقا نمازتو بخون روزتو بگیر آدم خوبی باش، مردم آزاری نکن، های اخلاقی تو رعایت کن، وظیفه عبادی شخصی شما چگونه باشه؟ صبح پا شدی این کارو بکن، ظهر نمازید اینجوری باشه، ماه رمضان این کارا رو بکن، شب جمعه این دعا رو بخون، گاهی وقت کردی زیارت بری اینجوری زیارت، اینا مربوطه به بَخیه. اما دیگه یه نظام جالب اجتماعی چگونه باشد؟ یه نظام اقتصادی درست چگونه باشد؟ یک نظام سیاسی درست به نیست سریع یه عده این حرفو مطرح کردند از صدر اسلام یه دستهایی در کار شد که عظمت وحی را تضعیف کند عظمت پیغمبر را تضعیف کند عظمت اولیای الهی ائمه اطهار را پایین بیاورد این حرفا به شکلی در صدر اسلام زده شده من با مدارک و منابع به شما نشون میدم که در صدر اسلام این حرفها رو چگونه زدن. و این نشیب و فرازی در تاریخ پیدا کرده اما در زمان فعلی ما چه در داخل ایران چه خارج ایران این بحث خیلی پویا و فعال شده و عجیب دارن دامن میزنن و من به خود ابی عبدالله الحسین سوگند احساس تکلیف میکنم تا این حد که هر انسان مسلمان متدین معتقد به قرآن و وحی وظیفه دارد تلاش جدی در این رابطه بنماید طبق آیه قرآن کریم و دولهم هم مستتعتم قوه نه یعنی فقط در مسائل جنگی و حربی و سلاحای نظامی خودتون رو تقویت کنید یکی از ترین جنبه ای که بناس غوی شویم و دوله هم مستتعتم من قوه مطرح میشه قوه برهان استدلال درک درست دین و شناخت ارزنده مکتب وعی اول برای تقویت ایمان خود دوم برای شناسندن به دیگران سوم صد پولادین محکم در مقابل نقشه دشمنان مکتب خدا چهارم به کمک این سپایه رکن چهارم ایجاد شود تا پایه های بلند اهداف الهی به وسیله وحی و نبوت در عالم امکان تحقق بیابد پس یک نظر اینه وحی آری ولی کارائی وحی تنها و تنها در یک محدوده بسیار اندک رابطه فردی و شخصی انسان با خدا به شکلی که شما الان در مسیحیت رائج کره زمین میبینید نظامی که در عالم در جوامعی که مذهب غالب مسیحی است و باور مسیحی هم دارند کاری به آیین مسیح نداره هر کاری میخوای بکنی، روش فکر کنید، به هر شکلی قاستی در بیارید، اما یک شنبه ها کلیسا بیاید یه دعایی هم بکنید، گاهی هم پیش کلیسا یک اعتراف به گناهی هم داشته باشید و گاهی هم یک دعایی داشته باشید. بقیه دیگه رابطی به مسئله وحی و دین و حضرت عیسی مسیح نداره. این دسته اول. دسته دوم متاسفانه از اون طرف تندروی کردن. همه از صدر اسلام داریم، امروزم داریم. دسته دوم آمدن گفتن وحی چون از طرف خداست دین راه الهی است هیچ کاری به من و شما رفت نداره همش مال خداست شما در آیین مسیحیت این تفکر رو دارید میگه ایمان بیاور بد میفهمی و حال اینکه در نظام الهی اسلام به خصوص مکتب شیعه میگه بفهم تا ایمان بیاری خیلی فرقه میگه فکر لازم رو خدا کرده برای ما، فکر لازم رو وحی کرده، ما دیگه فکر نباید بکنیم، وحی رو فقط بذاریم جلومون. این ظاهرش خیلی ممکنه همچین متدینانه و خیلی همچین حالت چه مذهبی های قوی و خوبی هستند، ولی وقتی بهش کافید بسیاری گرفتاری در داخل همین طرز تفکر نفته شده. یعنی حتی عقل را برای فهم قبل از وحی جهت ایمان و صحت وحی به کار نبر عقل را بعد از وحی بعد از اینکه فهمیدی وحی حقه و وحی و دانستی جهت بهرمندی بهتر از وحی عقل را به کار نبر به همین زواهر وحی نگاه کن با یه نگاه سطحی از زواهر وحی برو جلو اگر اولی رو افراتی بدونیم اینا رو میگیم تفریطی. اگر اولی رو تفریطی بگیریم اینا رو میگیم افراتی این هر دو دسته در طول تاریخ اسلام مانع تحقق هدف انبیا بودند. حالا چرا با هم بحث میکنیم میمونه نظر سوم نظر سوم چیه نظر اعتدالی نه افراطی نه تفریقی. نظر اعتدالی چیه وحی از طرف خداست دین از طرف خداست باید از وحی و دین استفاده کرد ولی با امکانات و قدرت‌هایی که خداوند در درون خود ما قرار داده یه جنبه مربوط به ما انسون انسان‌هاست هایی مربوط به حضرت حق اینا باید با هم همراه شوند تا با همراه شدن این دو هدف وحی در عالم تحقق بیابد اگر بخوام با یه مثال این رو خدمتتون عرض کنم میتونم در قالب یه مثال نسبتا روشن و ساده این گونه عرض بکنم اگر بگیم ما یک دانشکده دائر کرده ایم مثلا دانشکده پزشکی آقا این دانشکده پزشکی هدفش چیست و کی تحقق میابد هدف دانشکده پزشکی تربیت پزشک است. پزشک هازق لایقی که به طبانت تباوت کند خب حالا این سه نظریه رو ما در رابطه با این دانشکده داشته باشیم یک دانشکده پزشکی فقط میتواند مثلا توی یه زمینه خاصی پزشک تربیت کند بقیه رو دیگه توقع نداشته باش خب اگر این شد اصلا زمینه تحقق اونچه که بیش از این محدوده از معرفت است امر غیر عقلی و غیر ممکن تجلی میکنه و تلقی میشه دو بگن آقا ما میریم سر کلاس دانشکده پزشکی ولی همه کارا رو استادا میکنن مسئولین آموزش میکنن ما هیچ نقشی نداریم، ما فقط میریم اونجا میشینیم و میاییم. ما دانشجوی پزشکی فارغ التحصیل خواهیم داشت قطعا نه سوم کیه؟ میگه من به عنوان دانشجو وظیفه دارم وظیفم کیه؟ برم سر کلاس گوش کنم اون چرا که استاد میگه عمل کنم اگر استاد نباشد، امر استاد نباشد، تعلیم او نباشد، نهوه آموزش استاد رو کنار بگذارید، من ده سال و بیست سالم برم سر کلاس دانشکده با برگردم پزش نخواهم شد. ولی اگر من سر کلاس میرم استاد تدریس میکنه گوش نمیدم نمیپذیرم اونچرا که استاد گفته عمل نمی کنم بلکه مدعیم استاد تو نمیتوانی همه اونچه که به نام پزشکی برای من لازمه تو به من ارائه کنی خب باز منم پزش نمیشم پس ثومی که دروک باید با هم همراه بشه وحی از طرف خدا عنوان اونچه که خدا برای ما لازم دانسته و تلاش لازم حرکت بجا از طرف ما، به اون شکلی که وحی ما را موظف کرده نه تازه به شکلی که سلیقه شخصی خودم یا برخی تجربیات دست و پا شکسته ای که امروز اینجور فکر میکنم فردا یه جور دیگه فکر میکنم پس فردام یه جور دیگه فکر میکنم آخریم از اعماق جانم نال برمیابرم افسوس اونگاه که توانستم ندانستم انگاه که دانستم نتوانستم این دانایی و توانایی در کنار قدرت درونی من عقل و دل و عامل بیرونی من وحی دست به دست هم داده شود تا چگونه بخواییم حرکت کنیم پس سه نظریه شد بعد از اینکه دو نظریه کلی اول وحی نه وحی آری همه ماها جز آنانیم که میگیم وحی آری خب اگه وحی آری و که گفته قرار هو لذی ارسله رسوله بالخدا و دین الحق لیازهرهو الاددین ولی ولو کره المشركون پس چرا نشد و چرا اون هدف ایدئالی که توقع داریم در طول قرنها با این همه رنجها هنوز هم که هنوز شاهد تحقق ایدئالش نیستیم میگیم سه نظریه وجود دارد ببینید خود این نظریه‌ها چه مشکلاتی درست می‌کند یک وحی را قبول کن ولی این توقعات رو از وحی نداشته باش مثل اینکه دانشکده پزشکی رو قبول بکن سر کلاس دانشکده پزشکی برو ولی توقعی اینکه پزشک بشی از دانشکده پزشکی نداشته بود خب پس چی پس برای چی برام خب برو اونجا ممکن یه آمپول زدن یاد بگیری انگار وحیم اینه از وحی و از دین و از قرآن و از خدا نهایتش تکامل حد اقلی رو توقع داشته باش بیشتر نه دسته دوم همه اینا تو وحی پیش بینی شده ولی شما فقط همینقدر به بوحی قبول کردم دیگه حتی فکر کردنم نداری لذا اومدن از ابتدای صدر اسلام چه گرفتاری ها برای ما درست کردن گفتن تعقل گناهه اندیشیدن خلافه عقل لازم را عقل کل داره اندیشه لازم رو برای ما کرده این هر دوتا افراط و تفریطه. اما شکل سوم، آقا وحی اگر از طرف خدا آمده اون چه که لازمه سعادت بشره خدا از همه بهتر میدونه و خدا برای بشر معین کرده اما زوابطی براش گذاشته خب حالا ما میخواییم ببینیم بین این سه نظر این دو نظر رو چرا قبول نداریم و اگر این دو نظر باشه آیا واقعا هدف دین تحقق می‌یابه و چرا نظر سوم رو قبول داریم و اگر نظر سوم رو قبول داریم برای تحقق نظر سوم موانع چیه و امام حسین چی بیان کردن؟ ببینید عبارتی که امشب از نامی امام حسین علیه السلام به سران بصره خوندم حضرت میفرماد که ادعوکم الی کتاب الله و سنت کتاب خدا آخرین پیام الهی به عنوان آخرین وحیه سنت نبی به عنوان آخرین پیغمبر الهی که راه رو از طرف خدا به مردم نشون داده اما حضرت مشکلی که از مردم میکنن چیه میگن سنت مرده بدعت زنده شده حالا اگه میخواهید بدعتها رو از بین ببرید سنت رو زنده کنید و شما رو من بیارم تو راه درست قرار بگیرید راه چیه؟ میگه باید حرف منو گوش کنید مطیع من باشید یعنی چی؟ حالا اجازه بدید من برای تبیین این خیلی کار داریم الله این ده شب خدا توفیقی بده فرصت پیدا کنیم هم از دروندینی بهش نگاه میکنیم هم بروندینی من ابتدا از درون دین بهش نگاه میکنم هم به جهت تیمن و تبرک و احترام به وحی هم به جهت اینکه آخه ما میگیم ما وحی رو قبول کردیم فقط بحث داریم کارای وحی طبق نظر اول یا دوم یا سوم اگر از خود کتاب خدا وحی و سنت نبی دلائلی آوردیم که مدعیه که نه سومی اولی و دوبومی نیست این به عنوان یه بحث دروندینی کافیست اما در این حال بحث بروندینی هم روش خواهیم کردن شاالله لذا برای شروع من اجازه میخوام از قرآن کریم امشب چند آیه از سوره مبارکه نور گرچه آیات چند آیه از سوره مبارکه نور گرچه تعداد آیاتی که میخونم ش اگر بخوام تک تک آیات رو بحث کنم خیلی وقت میگیره نمیتونیم ما در طول این ده شبم باید به آیات دیگه بپردازیم، روایاتی در این بابه باید بحث کنیم، بحث‌های عقلی و عقلا را باید بحث کنیم، حکما چی گفتن، عرفا چی گفتن، تجربه تاریخی در این رابطه چه بوده، اینا رو بخوایم بشکافیم به اندازه ده جلسه مجبورم یک کمی با سرعت بیشتری پیش برم، ولی نوعا با شما عزیزان مستمع آشنام، شما خودتون پیگیری خواهید کرد و اینا برای شما تحقیق بیشترش کار مشکلی نیست. یک ما وقتی به قرآن کریم نگاه میکنیم قرآن کریم لازمه رستگاری و موفقیت گاهی با کلمه فلاح مفلحین قد افله گاهی با کلمه فوز فائزین اونایی که رستگار شدند، فائز شدند. حالا چه فلاح و فوز فرد به عنوان یک شخص که رابطه فردیشو با خدا درست کنه فائز بشه، رستگار بشه آیا امکان داره یک انسانی توی خانواده پینفری تاشون به رستگاری و فلاح نرسن یکی برسه؟ بله آیا امکان داره توی خانواده پینفری تاشون فائز نشن اون یکی فائز بشه، رستگار بشه؟ بله حالا بیایم بگیم آیا توی یک فامیل ده خانواری، بیس خانواری امکان داره یه خانواده رستگار بشه بقیه خانواده ها رستگار نشن؟ بله آیا ممکنه بخشی از یک جامعه رستگار باشن، همه جامعه رستگار نشه؟ بله ولی بحث اینه که اگه ما یه خانواده پنی نفری هستیم راه رستگاری و فلاح و فائز شدن کل چگونه است؟ په توی جامعه هم چگونه است؟ قرآن اول کلیشه میگه. چه شما به عنوان یک فرد میخوای رستگار بشی؟ چه به عنوان یک خانواده میخواید تون رستگار باشه چه به با عنوان یک جامعه که میخواید جامعهتون جامعه رستگار باشه شرط اولیش چیه؟ تسلیم محض در مقابل خدا، قاطع ارز میکنم. حالا بعد توضیح میدم، این تسلیم محض آوردن گفتن اینکه دیکتاتوروری میشه با دموکراسی نمیخونه اینا موانع تحققع. یعنی برادر من خواهر من خوب دقت کنید چرز میکنم. خواهش منم اینه زود قضاوت نکنید عجله نکنید. بذارید با هم بریم جلو تا معلوم بشه. آقا اگر من پسرم دانشجوی دانشکده پزشکی شد میگم باب جور رفتی دانشکده حرف استاد گوش کنی هر چی میگه عمل کنی ره چنان رو که رهروان رفتن او استادته او میدونه تو باید چه کار کنی تا پزشک بشی برگرده بگه آخه اصل دیکتاتوری گذشت حالا زمانه زمانه دموکراسیه. ما با بقیه بچه ها تو کلاس رأی میگیریم که آیا حرف استاده گوش بکنیم یا نکنیم این بدبختی نیست این مانع تحقق هدف دانشکده پزشکی میشه یا نمیشه آقا قرآن کریم تصریح کرده الان آیاتشو برای تو میخونم به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه میده یه گوشه شد میخوای رستگار بشی باید عبدالله بشی عبدالله یعنی چی؟ یعنی در مقابل خدا برای خودت اظهار نظر کودکانه بی تجربه و اندیشه کوته نظرانه را دخالت نده که بدبخ میکنی آقا چهار نفریم رفتیم دانشکده پزشکی استاد خون دلخورده یک عمر زحمت کشیده میگه نظام آموزشی اینه من چارتا رو با خودم همراه میکنم شعار میدم نه باید این گونه شود هم خودم بد بدبخص کردم همون چارتایی دیگر رو در طول تاریخ اینجوری در مقابل انبیا و اولیا استادن و این درده حالا ببینید قرآن کریم چه میگه؟ این دکتاتوریه یا اوج اندیشه و تفکر وقت براتون تحلیل میکنم روشنفکترین روشنفک اندیشمندترین اندیشمنده آگاهترین آگاه به شرایط زمان و مکان اون کسیست که خدا شناسیش دقیق تر و تسلیم خدا معرفتمندانه تر نه به شکل دسته اول نه به شکل دسته دوم دسته اول که میگه خدا کافی نیست و کافی نیست دسته دومم هم که میگه اصلا فکر نمیخواد لذا چی میشه یه پیروبی کورکورانه تقلیدانه مقلدانه خیلی زودم میتونه تاثیر امور قرار اینا نه اما این شکلی که حالا میخوام ارز کنم تسلیم! چگونه تسلیم؟ با اندیشه، با تفکر، با تعمق، با بررسی، با همه جوانب رو دیدن و به این نتیجه رسیدن که ملک ها بزرگوارا تو بزرگ پادشاهی به جز از تر تو یارب نبود مرا پناهی در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره به در تو رونمودم به کمال روسیاهی گرت از کرم پذیری نبود زیان سودت به سرائر زمیرم تو به جملگی گواهی این فقط تو شعون فردیه؟ یه بیمار دارم از همه جا ناامید شدم ای خدا تو نه تو هر عمری ای خدا تو تو مکاتب ناامیدم میگم خدا تو توی نظام های فکری و سیاسی و اقتصادی ناامیدم خدا فقط تو اینو باید قرآن میگه بپذیرید مثل اون دانشجویانی که سر کلاس رفتن بگن استاد قبول کردیم قرار تو ما رو پزشک کنی لذا چشم بگو چه بکنم حالا ببینید قرآن کریم چه میگه یکی از واجه های قرآنی دهی محرمه امام حسین میگه اد او کتاب الله شما رو میخونم به سوی کتاب خدا کتاب خداست یه دقت کن. این دهی محرمه یه کمی دقیق بشیم با هدف امام حسین و قرآن انشاءالله بینش بیشتری به برکت ابی عبدالله الحسین برای ما حاصل بشه انایت بکنی یکی از واژه‌های های قرآنی که رستگاری، فلاح و نجات رو چه برای فرد، چه خانواده، چه جامعه مطرح میکنه میگه ایمان است که لذا میگه قد افلهل مؤمنون پس مؤمن نباشن اهل فلاح نیستن یه اولین بحث قرآنی آقا کسی مؤمن نباشه قرآن میگه رستگار نیست خیلی قاطع عمدن هی به مثالا برمیگردم دانشجوی دانشکده پزشکی استاد مسئولین آموزشی دانشکده پزشکی میگه تا کسی اینجوری تو این دانشکده نباشه ما بهش مدرک پزشکی نمیدیم حتی از این دانشکده اخراجش میکنیم خدا میگه فارغ تحصیل کلاس وحیه که به رستگاری مورد قبول قرآنی برسه کسی است که باید مؤمن باشه حالا مؤمن کیه؟ جانماز آب بکشه و فقط یه رابطه فردی با خدا داشته باشه؟ نه مومن کیه؟ سوره مبارکه نور از آیه 47 چند آیه رو میخونم تقاضا دارم دقت کنید. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اتعنا سم یتولا فریغون منهم من بعد زالک و ما اولائک بالمومنین. چقدر سریعه و روشن و یقولون آمننا میگن یه گروه اینا گروه از منافقین هم. حالا سرحالش هم به صلاح شعن نزولش و مثل آقا آیه بودن مفصل تو تفاصیل اومده دیگه ما فرصتی اینا رو نداریم مجمل عرض میکنم و یقولون میگوین آمننا بالله ما به خدا ایمانا بردیم و به رسول به رسولش هم ایمانا بردیم و عطقنا ما اطاعت میکنیم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد از اینا یه گروهی در از اینا رو میگردونن سر باز میزنن و ما اولائک پس اینا مؤمن نیستن پس اگر کسی بخواد حرف خدا رو گوش نکنه رسول رو گوش نکنه مطیع نباشه مؤمن نیست چون بعدش میگه و اذا بعدی و ازا دعو الله و رسوله لیحکما بینهم اذا فریق منهم معرزون و اذا الله و رسول میگه خب شما میگید ایمان داریم خب شما رو میخوریم بیاید به سوی خدا و رسول برای چی لیحکما بینهم حکم را خدا و رسول بکنه یعنی نظر نظر خدا و رسول خدا چی گفته آقا دیگه خیلی امولید دیگه آخه حالا دیگه خودمون هستیم دیگه دیگه چرا اینقدر خدا رسول چی گفته؟ خب ولو خودمون این همه زحمت کشیدیم دانشگاه های مختلف رو دیدیم داخل و خارج بودیم تخصص پیدا کردیم بشینیم خودمون سمه هی میگید وحی و خدا با رسول میگه ازا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم ازا فریغم منهم مؤرزون یه دسته از اینا اینجوری که ايراد خیلی سراغ حکم خدا و رسول نرید و ان یکون له ملحق تو الیه مزعنین عجب نکته ای میگه البته اگر همین حکمی که خدا و رسول گفته براشون بیان کنید این به نفعشون باشه میگه نداره خوبه اما اگر یه توقعاتی دارن با این توقعاتشون نخوره میگه ما که اولم گفتیم آقا چرا سراغ به میرید چیزو خودمون تصمیم بگیریم اینا دردا اینا گرفتاری های ماست حالا قرآن چی میگه اول احتر... یقولون آمن نابله و به رسول و عصر اصل... خدا رو قبول کردیم رسول رو قبول کردیم ادعا الاماش آفتاب لگن ده از شام و چی؟ این بدبختیه لذا یه نکته زریف قشنگی رو قرآن داره اشاره میکنه شاگردای این کلاس ای با استاد برخورد کردن چگونه سلیقه‌ای دانشجو رو میگن بیا ببین استاد چی میگه میگه بیلکم بابا خودمونم بلدیم دیگه حالا میگن استاد اینجوری گفته نمره ای بی... این خوبه این خوبه میام حالا ولو درشم نخونده بخواد نمره 20 بهش بده یعنی چی؟ یعنی معیار یا منفعت طلبی است یا هواپرستی یا خودخواهی هاست تا زمانی که شاگردا یک کلاس رفتارشون با استادشون بر این مبنا باشه هدف اون استاد در اون کلاس پیاده نمیشود حالا به جای استاد بذار خدا و پیغمبر و کلاس رو بذار کلاس وحی و تعلیم الهی نتیجهش همینه دیع از این روشن‌تر قرآن بیان کنه حالا ادامهش رو ببینید فی قلوب بهم مرزون امرت ها بود یه خافون عحیف ف الله عليهم و رسول او بلقل که الله و از سمت قرآن و دردیابی قرآن درمانی که قرآن معرفی می کند ولی چه کنیم که با قرآن خیلی؟ ونس عمرقی ظریف نداریم تازه میان میگیم مگه قرآن قراره همه مشکلات ما رو حل کنه قرآن هم یه چهار کلمه خدا گفته بابا برای روابط شخصی فردی خودت از افی قلوب هم اینا دلشون بیماره که اینجوری برخورد میکنن اینا مریضن بیان خودمونی ارزمونام شما مثلا 5 تا دانشجوی پزشکی عمدن به مثال برمیگردم پنج تا دانشجوی پزشکی رو میبینید وارد کلاس شدن میبینیم که حرف استادو گوش نمیدن بعد بر مبنای سلیقه‌ای برخورد میکنن ممکنه که بگه اینا بیمارن اینا دیونه اینا صفیه قمای خب قرار نبود سریکلاس کلاس قرآن کریم داره میگه اینا که وحی رو قبول کرده بودن اینا که قرآن رو پذیرفتن اینا که جزء دسته اول نیستن بگن وحی نه پس چرا اینجوری دارن برخورد میکنن؟ اگر حکم پیغمبر به نفعشون شد میگن خوبه؟ اگر احساس کنن این حکم براشون دردسر و مشکل و زحمت داره میان میگن که نه ما مثلا احتیاجی به این حکمانیست و لذا اعراض میکنن افی قلوبهم مرز امرتابو اینا شک دارن به یقین نرسیدن پس یکی از مشکلات مرز است. یکی از مشکل فی قلوبه مرز فضاده همون لا مرزا. حالا اینا رو این شالا بحث میکنیم. راحلش هم قرآن میگه چیه؟ یکی دیگر چیه؟ شک یقین ندارن. معرفت یقینی پیدا نکردن. اگر معرفت یقینی پیدا کنن آقا طرف یقین کرده که زمین داره به گرده خورشید میگرده. کلیسا محکوم رو به ادامش کرده گالیله. نگو این حرف رو. بابا من باور کردم. هذی رفتم ولی خب حالا مجبورم کردید زبانم خلاف باورم ولی از دلم که نمیتونید در بیارید از فکرم که نمیتونید بیرون کنید از خوذه برون تراود هر اونچه چه در وقتی چیزی وارد دل شده باشه بالاخره در گوشه و کنار حرفا و اعمال خودشو نشون میده حالا اومده توبه نامه رو توی کلیسا قرائت کنه من توبه کردم زمین حرکت نمی کند ولی با انگشت پاش رو زمین مینویسه با توبه من زمین از حرکت باز نمیمانند یعنی حرف من که واقعیت رو عوض نمیکنه. لذا یک انسانی که باور یقینی کرده است اگر همه عالم دست به دست هم بدن یک باور الله اکبر تکبیرتالحرام نماز شما که رکن است از واجبات نمازم بالاتره شما یک واژه الله اکبر اگر یقینی شده باشد برای یک انسان به وسیله ابزاری که یقین عقلی درست میکند با عقل یقین شهودی درست میکند با دل همه عالم رو در یک کفه بگذارید نظر خدا در یک کفه میگه من گفتم الله اکبر برو این دام بر مرغ دگرنه که را بلند از آشیانه ما بحث خدا برامون متره ایم. لذا میگه امرتابو اول افی قلوبه هم مرز اینا بیمارن دلشون مشکل داره امرتابو یا شک دارن هنوز باور نکردن به این نتیجه نرسیدم امیخافونم ایهی فالله علیهم و رسوله حیف با حیجیمی حیف آفه یعیف به معنی ظلم و جور و حکم ظالمانه است ام خافونه یا خائفن نگرانن میترسن ایهی فالله علیهم و رسوله خدا و رسول بنا حکم ظالمانه بده یعنی از این جهت حکم خدا رو نمیخوان حکم رسول رو نمیخوان چون خائفن این حکما حکمه ظالمانه باشه ستم مندانه باشه بل اولائکه هموزا اینا خودشون بدبختا ظالمن چون یکی از معانی دقیقه ظلم چیه نقلی مقابل عد عد, عد. وضع شیفی مابوزه ظلم شیر رو از جای خودش خارج کردن یعنی قرار بود حکم خدا اینجا باشه حکم خدا رو کنار زدن یا حکم دیگه آوردن اینجا من اگه بگم دانشوی پزشکی استاد رو کنار زد حرف مثلا افراد عادی رو گوش کرد کتابای درسی مفید رو کنار گذاشت یا جزوات غیر مفید و جلو کشید نمیگم زلمه. اول این ظلم به کیه به خودش دوم به جامعش، اش به استادش به اون کلاس به نظام آموزش و از همه بدتر چیه از همه بدتر کیه بدبین کردن مردم نسبت به اینکه در این دانشکده دیگه امکان دانشوی پزشکی تربیت کردن نیست این خودش از بزرگترین ظلم‌هاست میگن که برای رفع خستگی بد نیست یک رئیس کاروانی که رئیس قر... یک گروهی که دوز دزدا و یک گردن کلوفت گردنه بودن و سر راه ها رو می‌گرفتن و اینا رو جیبشون رو خالی می‌کردن و از یه حرفا یه بار یه کاروانی رو مالشون رو زدن همه انبارو بردن پیش رئیس دزدها همینجوری که داشت تقسیم کرد رسید به یه بسته دید روی بسته آیتول کرسی نوشته شده دزدار گفت این بسته رو برید صاحبش رو پیدا کنید حتما بهش برگردونید گفتن یعنی چی گفت ببینید صاحب این عقیدش این بوده که اگر آیت الکرسی روی این بسته بنویسه حفظ میشه شما که دزدیدید عقیدش خراب میشه ما دزد مال مردمیم دزد عقیده مردم نیستیم بس دزد عقیده مردم نباشیم بسته رو آوردن برگردوندن ببینید چه ظلمی از این بدتر باورها را خراب کنیم عقاید و نابود کنیم اندیشه درستی را که میتونه زمینه تعالی بشر باشه این اندیشه رو فاسد کنیم لذا قرآن کریم چه میفرماد؟ میگی اینایی که میگن قبول داریم وحی رو بعدم میگن ما مؤمنیم ما خدا را قبول داریم ما رسول را قبول داریم ولی وقتی یه امری پیش میاد میگیم ببینید حکم خدا و حکم رسول چیه؟ میگن نه یا اینکه یه بیماری درونی دارن این دل رو باید اصلاح کنن یا اینکه شک و ریب دارن هنوز به باور قطعی نرسیدن یا اینکه باز اینم به اون دوتای قبلی برمیگرده فکر میکنن حکم خدا و رسول ظالمان است اما این اده خودشون ظالمان چون حق رو از جاش خارج کردن هم نسبت به خودشون هم افراد جامعهشون و بدتر از همه باورها را نسبت به این ارزش درست از بین بردن اما حالا ادامهش آیه شماره پنجاب و یک سوره نور تقاضا دارم خوب دبقت کنید این نما میدونید این نما از عدات حسر فقط. اگه قرار از وحی استفاده کنیم ببینید وحی چی میگه؟ میگه این نما فقط کان قول المؤمنین ازاد دعوه الله و رسولهی بالا راجع منافقین گفت چی؟ وقتی بهشون میگن که ازاد دعوه الله و رسولهی لیحکم بینه هم اینا چی؟ معرزون اعراض میکنن اینجا میگه این نما فقط کان قول المؤمنین سخن اونی که مؤمنه سخنی که با عمل همه که بد بیان میکنه چیه فقط اینه غیر از این نیست ازاد و رسوله لیحکما بینهم هم ان وقتی میگم بیا ببین بی خدا چی گفته ببین پیغامبر چی گفته انقدر اعمال سلیغی شخصی نکن اگه قرار بر مبنای وحی حرکت کنی ببین وحی به تو چی یاد داده چی میگه میگه فقط و فقط اینه. آن یعقولو سمعنا و اطعنا و اولاد که همال مفلحون گناش. خدا یه انجوی گفتی وقتی که شب عاشورا ابی عبدالله الهه سین عليه السلام اینا کی بودنی اصحابش؟ هفتاد دو نفر نوادو نفر صد و نفر این تعداد نوشتن دیگه حالا هر کدوم فرض کنید صد نفر صد ده نفر حالا هرچی این تعداد اندک چه تحولی در طور این چار ده غر کردن شما فقط ایران رو نبینید که از بچگی مادرها وقتی ما رو رو آغوششون گرفتن شیر بدن برای امام حسین عشق میریختن اشک میریخته با شیرشون تو کام ما میرفته هر جای دنیا میرید اوزاقی موندن الان شما مسئله داعش رو مسئله خب دست کم نمیگیرید حق نیروی عجیبه اقتصادی، نظامی، سیاسی ابرقدرت‌های عالم پشت سرش برای اینکه بتونن این ارزش رو بکوبن آقا وقتی محرم میشه اینا به وحشت میافتند که حسین چه کرده و خودشون، بعضی از اینها که دستگیر شدن، بعضی از اینا که اسیر شدن، تو مساحبه هاشون گفتن، بعضی ها منقلب شدن، برگشتن، اومدن اعتراف کردن. یعنی رو نمی‌دونیم این امام حسین چی کار کرده؟ یه تیکش طبق این آیه هم المفلهون پلاه چیه؟ امام حسین میفرماد برید اینا با من کار دارن. بریم؟ کجا بریم شبه هاشون؟ کجا بریم؟ ما چنان در مقابل تو تسلیمیم. که اگر هزار بار ما رو بکشن و زنده کنن بکشن و زنده کنن دست از تو بر نمی داریم ولی که یه بار که بیشتر ما رو نمیکشن. کشن لیزه از دید قرآن مؤمنن که قد افلح المؤمنون به فلاح می رسن انما کانه غول المؤمنین اذا دعو الله و رسوله لیحکما بینهم ایغولو سمعنا و اطعنا و اولائكه هم المفلحون وقتی اینا رو میخونم میرو خدا چی گفته پیغمبر چی گفته ببینید وحی که را حدی براتون معین کرده اینا میگن سمعنا شنیدیم و اطعنا چش اطاعت کردیم اولائكه هم المفلحون و من یت الاه و رسوله بعد خدا داره خبر میده اونا اینجوری حالا میخواید نظام وحیانی قرآنی را برای رستگاری و فوز و فلاح بدانید؟ من راه را دارم به شما میگم و ومنیوت الله و رسوله اونی که مطیع خدا و رسولشه و یخش الله خشیت پیدا میکنه خشیت میتونید خوف همراه با علم و است یعنی نگرانی از چی؟ یعنی مثال میزنم همه تون آشنایید ولی من برای تذکر دارم ارزم کنم ببینید یه وقت هست بنده دارم از یه کوچه رد میشم یه سگی از اون ورمیاد وحشت میکنم اینو خشیت نمیگن این خوفه اما یه وقت هست بازم یا وقتم تو کوچه کوچه رد میشم یه آدم قلدور مستی چاقو هم داره میاد من وحشت میکنم اینم خشیت نمیگن چون است که اونی که ازش میترسم خطرناکه و ممکنه عذیت بیجا بکنه خب سگ میکنه بی خودی به پر پا گاز بگیر یا آدم مست چاقو به دست دیه ممکنه الان همینجوری دل بخواهی بیا چاقو رو تو سینه من فرو کنه خب می ترسم اما خشیت چیه بنده رفتم پیش پزشک پزشک و قبول دارم به منم گفته که فلانی اگر این ای که بهت دادم یه ذره بی احتیاطی کردی عمل نکردی و پرهیزهایی که بهت دادم دقیق پرهیز نکردی یه ذره از اون غذاهایی که گفتم نباد بخوری خوردی دفعه دیگه اومدی اینجا من دیگه با تو کاری ندارم آ خطرناک آ منم یه کمی از این بیعتیاتی های کردم حالا دارم میرم مطب دکتر نگرانم خائفم این خوفو میگن خشیت چرا؟ چون میدانم او حقه و میدانم او جز خیر من چیزی نمیخواد و میدانم الان اگه بفهم من چه کار کردم دیگه من از مطبش بندازه بیرون بیچارم این خشیته و من یوت الله و رسوله و یخش الله بفهمه که نکنه خدا بگه برو اینکه شبهای جمعه ای دعای کمیل میخونید مولای من و شما با آن نالهای عارفانه اندیشمندانه معرفتی به من و شما میآموزه صبر تو علا حر نارک و کیفه صبر او فراقک اگه تو منو جدا کنی تو منو دور بریزی این دیگه چه؟ و یخش الله این خشیت رو پیدا کنه و چگه تقوای بعد از خشیت یعنی خود را کنترل کردن بر مبنای جز اونچه که او میگه عمل نمی کنم من جز اونچه که پزشک گفته نمی خورم هر چیم عمل میکنم اونی که او گفته اگر اینجوری شد فا اولا ای که هم فائزون اینجا فوز گفته فلاح نگفته فرصت نیست ولی در طول این ده شاید انشاءالله عرض کنم تفاوت فائز و مفلح چیه؟ اولش فرمود اونایی که مؤمنن، تسلیمن، امر خدا و پیغمبر رو میپذیرن، احکام اونا رو قبول دارن، میگن سمینا، اتعنا، اولاکه همول مفلحون، بعد میگه کسانی که اطاعت الهی رو انجام میدن و بر رسولش رو مطی میشن، خشیت دارن و تقوای بر اساس خشیت عجب نکته آی قرآنیه و که هم الفائزون خب حالا ممکنه به منو شما بگن تا اینجای بحث همه رو قبول کردیم قرآن گفته ولی نه همه مال فرده یه فرد مطیع خدا بشه تو احکام فردی تابع نمیدونم دستورات الهی بشه این فلاح داره این خشیت پیدا کنه این فائز میشه فلان میشه من امشب فقط با توجه به همین آیات می رسم صفحه بعدش که دو آیه بعدش رو اجازه بدید براتون سریع بخونم چون وقتی بیشتر اجازه نمیده ان شاء الله شب‌های بعد آیات دیگر رو میارم بحث‌های دقیق‌تری رو هم با هم دیگه با توجه فعلاً بحث دروندینی داریم ها. داریم از خدا وحی میاریم بحث میکنیم تا بعد ان شاء الله از بروندینی هم براتون بحث کنم قرنهاست بزرگان ابن سینا راجبه این چجوری فکر کرده چی گفت علامه هلی 800 سال قبل چی گفته؟ خاج ناصری الدین توسی چجوری فکر کرده؟ ملا صدرات تو ای اینا به اصلا مطرح بوده نه اینکه زمان ما ولی عرض کردم همون طوری که در صدر اسلام این دو دسته مطرح بود حالا هم مطرح شده. آیه شریفه 55 رو سری می خونم دیگه فرصت اجازه نمیده که بخوام خیلی طول بدم فقط تقاضا میکنم دقت روش بکنید بعد خیلی کار داریم. و عدالله منكم. صحبت چی بود؟ ایمان آوردن مؤمن کیه؟ مؤمنین واقعی هم اینجوری حالا خدای وعده داده وعد الله لذین آمنو کم و عمل و صالحات لیستخلفن هم فیل عرض کم استخلفن لذین من قبلهم و لیومکنن لهم دینهم و لذر تزالهم و لیبدلن نهم من بعد خوفهم امنا یعنی چی؟ یعنی اگر قرار این راجب نظام فردی یا اجتماعیه تصریح آیه نیست راجب نظام اجتماعی پس اگر قرار نظام اجتماعی شما بر مبنای وعده الهی یک جامعه ایدعال باشد الله لذین آمنون کم مومن اگر شدید مومنم آیات بالا گفتیم کیادم سمینا و اعمال نظر شخصی روی وه و بحی را به شکل دیگری در آوردن او اینا چه میشه؟ لای از تخففا نهم نه فل ارز که من قبله. آیا قبل حضرت یوسف قلبه پیدا نکرد؟ حضرت سلیمان قلبه پیدا نکرد؟ حضرت داوود قلبه پیدا نکرد؟ اینا تو آیات اومده بعد انشاءالله بحث شو میکنیم جمبندی کنم امشب دیگه بیشتر وقت اجازه نمیده به لطف الهی انشاءالله الله و شب با هم پی بگیریم خب چی عرض کردم؟ عرض کردم بحث سال 93 ما در این مکان این بود که نقش امام حسین در تحقق هدف انبیا امسال چی رو داریم بحث می‌کنیم موانع تحقق هدف انبیا در بیان امام حسین چیه تبیین آشورا و امام حسین موانع تحقق هدف انبیا رو خب برای اینکه هدف انبیا رو ما بدونیم باید بریم ببینیم که کتاب انبیا حالا ما اینجا انبیا منظورمون اسلام پیغمبر اسلامه ببینیم چون پیغمبر چون صدامت نبوت هم پیش ماست پیغمبر که اومد همه انبیاد قبلی درش نوافته شده پیغمبر هدفش چی گفته قرآن که کتاب وحی پیغمبر آورده هدف رو چی گفته اینجا گفتیم دو دسته پیدا میشن یه دسته میگن وحی نه نبوت نه خدا نه پیغمبر نه همه چی دسته دیگه میگن بله ما جز دسته دوم شدیم دسته هم بخوان بحث کنیم بحث داریم میایم سراغ دسته دوم وحی بله ولی اینجا سه دسته شدن یه دسته. وحی بله ولی تکامل حد اقلی. دسته دوم وحی بله ولی شما هیچ نقشی ندارید. دسته سه وحی بله ولی شما هم نقش دارید. خب کدوم یکی از این سه دسته میتونه درست باشه؟ میاییم سراغ اول در اون دینی خود قرآن کریم. قرآن کریم میفرماید رستگاری، فلاح، فوز، مال که در مقابل خدا و رسولش تسلیم باشه این تسلیم هم تسلیم اندیشمندانه معرفتمندانه است. باید با اندیشه و تفکر تسلیم بشن و لذا در آیات سوره مبارکه نور که با هم بحث کردیم ابتدا نقد کند کسانی را که مدعی ایمانن مؤمن نیستن اینا ظالمان و ظلم واقعی هم که اینا انجام میدن دلیل شیافی هم مرزه یا ریب و شک. یا خوف از منافع مادی شخصی خودشون تا زمانی که بشر اینجوری باشه از وحی استفاده نمیکنه اما قسمت دوم اونایی که مؤمنن فائزن رستگارن کیانن انما فقط و فقط اینه میگن سمعنا و اطعنا و همول فائزون و این فوزم فوز فردی شخصی نیست کما اینکه در آیه پنجاب و پنج در ادامش به ما فرمود وعد الله خدا این وعده رو کرده اگر شما به وعده خدا عمل کردید مؤمن شدید استخلاف الهی در زمین مال شماست کالا این به چه صورت اجازه بدید شبهای بد پی بگیریم خب مثال زدم کلاس و استاد و مربی و جزبه درسیست و اما شاگرد یا نمیره سر کلاس یا میره بقیه رو با خودش همراه میکنه که استاد بریزه بیرون یه نمونش شب اول محرم معمولا میریم کوفه جناب مسلم ابن نعقید آقا متی رسول شدن مگه رسول نگفت بعد از من اهل بیت من مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوهن من رکبها نجا و من تخلف انها حلک میخواید حلاک نشید؟ باید همراه این سفینه باشید. مگر نبی نفرمود اینی تار کنفیک مستقلین او سقلین کتاب الله و اطرتی کتاب و اطرت خب حالا مظهر اطرت آخرین از خمسه طیبه، سید شباب احلال جنه وجود مقدس ابی عبدالله الحسین نمایندش رو فرست داده شاگرده اومدن سر کلاس یا اومدن بقیه رو با خودشون همراه کنن استاد تنها بذارن چجوری با بقیه؟ برای چی؟ یا فی هم مرز بود یا امرتابو به تعبیر قرآن کریم بود یا خائف از این که منافع مادی شند. غیر از این که چیز دیگه نمید. اما اونایی که این نبود مؤمن بودن قالو سمعنا و اطعنا یکیش جناب حانی حانی پیرمرده ریش سفیده مرد مخترمه رئیس قبیله خودش در کوفه میدونه الان مسلم رو تو خونه پناه دادن با ابن زیاد درفت دادن به قول عوام بازی با دوم شیر، ولی چه کرد نهایتشی خوب جانی از ما میگیرید خوب جانو بگیرید مگه این جانو گرفتید جانان رو هم از من میگیرید تازه با این جان گرفتن به جانان میرسم همه کمال ما اینه که بتونیم به جانان برسیم و من الان راه رسیدن به جانانم با جان دادنه ولی امام حسین میخواست افراد بدون جان دادن به جانان برسن اما وقتی جامعه این ظرفیت رو نداره حالا لازمه بعضی ها جان بدن خودشون به جانان میرسن بقیه رو هم برای رسیدن به جانان معرفی کنن راهش چیه لذا حانی شهید میشه خمبه عبرونه میاره خود مسلم بن عقیل علیه السلام وای از ایشا گردا قالو سمعنا گوش کردیم ادعا کردن اطعنا. نماز مغرب رو که مسلم خون تو کوفه جا نبود تو مسجد کوفه جا نبود پر نماز اشاره که خون برگشت هیچ که نیست ای وای و اتنا امتی که اینجوری باشه هدف انبیا باید تحقیق بیابه تعارف نداره من الان تو شونه فردی خودم همینجورم تو شونه خانوادگیمون هم اینطوریم، تو شونه اجتماعیمون هم اینطوریم، منفعت مادی برای ما، وقتی مطرح شد خدا میره کنار، باید خدا مطرح باشه، خدا رو وقتی میخواییم ببینیم به این معنی، لازم منفعت مادی باشه، شاش. لازم جان بدم چشم، تا زمانی که امت به این حالت نرسه، اهداف انبیا تحقق به هانی برگشت، دید تنهای تنهاست، خدایا کجا برم ببخشید مسلم برگشت دیگه تنهای تنهاست دیگه خونه ی هانی هم که نمیتونه بره چون هانی هم دستگیر شده اونجا هم تحت کنترل اومد تو این کوچه ها سرگردانه به دیوار خانه تکیه کرد توع خانم این خانه پسری داره اوزای شهر شوب پسر رفته نیومده دلش شور میزنه در رو باز میکنه میبنده بچم کجاست نیومد این آقا تکیه به دیوار داده و اونجا نشسته؟ نمیره یه بار دو بار بعد از چند بار آقا مگه خونه نداری؟ چرا نمیری؟ نه من خونه ندارم چطور؟ بقیه من در این شهر غریبم مگه کی هستی؟ بقیه من مسلم ابن عقیلم پیک امام حسینم توعه به تعبیر من تو سرش زد وای بر من یعنی در کوفه یک مرد پیدا نمیشه تو رو راه بده کار به اینجا رسیده مسلم رو به خانه خودش راه داد ولی زمانی که مردم انقدر از حقیقت دورن و منافع مادی براشون مطرحه جان و جانان تفاوتش رو با هم نمیفهمن کار به کجا میرسه امشب مسلم رو تو خونش راه داد ولی فرداش چی شد؟ فردا این شد که یه وقت دیدن دور خانه توعه رو محاصره کردن مسلم از خانه آمد بیرون از هر طرف دوره برش گرفتن شمشیرها و نزه ها و سنگها ها بر او فرود میآمد بالاخره دستگیرش کردند به دارال اماره کوفه کوفهه بردن بهش گفتن وسیعت و وکن بکن که میخوایم الان تو را از گردنت رو بزنیم. مسلم به گریه افتاد، گفتن عجب به این زودی ترسیدی، گفتن به خدا گریم برای خودم نیست، گریم برای اینه که من به شما مردم اعتماد کردم، به حسین نامه نوشتم، گفتم بیا، ولی غافل از این که به تعبیر من شما سمعنا گفتید، ولی اطعنا نیستید، بعد فرمود که بذارید عمر صد باش نسبت داشت از قبیله قریشن عمر صد بیا وسیعت هامو به تو بکنم یک نامه ای بده به امام حسین بگو که دیگه نیاد کوفه دو من در کوفه وقتی توقف داشتم یه مقدار بده کار شدم این زره و صلاح منو بفروشید بدهی های منو بدید همین که بارای دارور اماره بردن یه نگاهی به سمت مدینه کرد و یک سلام داد از سلام یا ابا عبدالله اما امام حسینم روز آشورا آخرین لحظاتی که فرمود حلم ناصر ینصرنی اولین نختشین بودی یا مسلم ابن عقیل یا حانی ابن اربه امام حسینم از اونها یاد کرد صل الله علیکه یا مولای یا ابا عبد الله.